ایران بازنگری در تاریخ قلمرو میانی جهنم مسیح باستان در تصورشون یک جایی پر از آب پر از تیمسا. و پر از تمسا دقیقاً چیزی که بایش دقیقاً. سرکار دارن و ازش میترسن بایدین هر جایی هر چیزی که براشون بد بوده حالا ما بگیم مثلاً برای ما ایرانی چرا زمهری بد بوده و الان شما فرض کنین ده هزار سال پیشه هنوز گزنده یخبندان تمام نشده شما هم تو این منطقه فلات دارین زندگی میکنین کاملاً تحت تاثیر سرمای این مرکار از ایننه خواهش میکنه میگه بگذار مردم عرطه استادانه سیموز در فراهم کنند بگذار سنگ لاجورد بیاورند بگذار سنگ های قیمتی و لاجورد خالص بیاورند برای اروک شهر مقدس بگذار مردم عرطه سنگ ها را از کوهستان فرود آورند و معبد بزرگ و مزار عظیم مرا بنا کنند خب ببینید یه سیم و زر یعنی طلا یعنی و نقره خب ما میدونیم که مثل نخستین فلزی بودی که بشر کشف کرده خب چه جوری ممکنه اینا مردم عرطه که در سردم ایران امروز هستن اینا سیم و زر ولد بودن ولی مثل ولد نبودن از اونا یاد گرفتن خب این رو ما میانیم چی کار اینو این با امان یک سند دست اول با قلعه ایران مهر قرار میدیم چون کتیب هست به نام ایزد یکتا باز سلام و احترام خدمت هممیهنان گرامی همراهان صدای امید و علاقمندان و پیگیدان برنامه ایران وچ. در قسمت 19 این برنامه در خدمت شما هستیم در اواخر قسمت 18 هم قول دادیم که وارد دوری تلایی تاریخ قلم روی میانی یا دوری جمشید بشیم. دوری جمشید دوری است که سند بسیاری در موردش هست منابع بسیاری بر وجود چنین دوری در تاریخ قلم روی میانی تار و تقریبا در تمام قلم روی میانی از رشته کوه های هندو تا رشته های آلپ تقریبا در تمام تمدن ها و فرهنگ ها اگر اسطوری ازشون باقی مونده اگر تاریخ ازشون باقی مونده و حتی در مباحث زبان شناسی این تمدن های این محدوده ما ریشه ها و منابع و همچنین هایی در مورد تاریخ دوره جمشید رو میبینیم یه دوره کاملا پرسند هست و میتونیم روی اون خیلی مانور بدیم و در رسم نوار تاریخی این برنامه نقش اساسی خواهد داشت این دوری جمشید در این قسمت از میان چهار کارشناس برنامه دو نفر حضور دارن به خاطر تعطیلات تابستانی و همچین تحلیلات عید فطر هست. چون این قسمت 19 نوزدهم تقریبا روز بعد از تحلیلات عید فطر داره زد میشه به خاطر همین دو نفر از دوستان حضور ندارن و دو نفر از دوستان دیگه همون جنا آقای کریمی و جناب آقای ایران میر. در خدمتشون هستیم در این برنامه و امیدواریم که به امید خدا در قسمت های آینده دنیش آینده حتماً هر چهار تا کارشناس در خدمتشون باشیم و از نظراتشون و دانششون بهره ببری. در این قسمت و قسمت 19 هم جناب آقا ایران می قول دادن که کلیاتی از این نوار تاریخی رو خدمت شناندگان عزیز بفرمایند. حالا ما چون روش پژوهشمون، روش بحثمون و روش تحقیقمون در این آب و خاک و در ایران تقریبا یک روش جدیدی هست و تا من ندیدم حتی چه در دانشگاه ها چه در برنامه های تلویزیونی رادیویی و حتی نشست های دانشگاهی ورکشاپهای علمی پژوهشگاه های مختلف چنین روشی تا به حال به کار گرفته نشده این روشی که ما میاییم بر اساس اسناد کههن تاریخی چه اسناد ایران و چه اسناد و اسناد و تقریباً تقریبا تمام علوم مختلف اینا رو مورد بررسی قرار دادیم و یک نوار تاریخی رسم بکنیم و بر اساس نوار تاریخی تاریخ قلمرو میانی رو مجددن بازخوادی بکنیم. این روش تقریبا جدید هست و برای اینکه روش جا بیفته برای شنوندگان گرامی به های مختلف و به های مختلف این باید تکرار بشه تا اینکه جا بیفته برای شنوندگان گرامی. جناب آقای ایران مهر گرامی ضمن سلام علیکم به شنوندگان کلیاتی که در نظرتون هست بفرمایید تا اینکه ما وارد بحث بشیم. خواهش میکنم درود به شما و شنوندگان گرامی برنامه بله این مبحث دوره جمشید دوره پرسند پرکشش پرچالشی ما هم هی جذب میشیم که بریم وارد این دوره بشیم تا یه مدار خودداری میکنیم به این دلیل که برای مثال بنده تو خونه خودمونم میتونستم درباره باری جمشید حرف بزنم بله من تا می اینجا به بحث بذاریم موضوع رو و به چالش کشیده بشه تا بتونیم به نتایج درستی برسیم برای همین بازم من خودداری می از ورود به بحث دوره جمشید و چون شنوندگان ما از تیفای مختلفی هن. ما ماهی می گیم آقا نقطه ثابت گشتاست نقطه ثابت کیخسرو کیومرس جمشید بعضی از شنوانده ها خب طبیعیم واسه ممکن اصلا ندونن که جمشید اول بوده یا خسرو تامورس جلوتر بوده یا گشتاس اصلا نمیدونن سر و ای نوار نوارای نوار نوار کنیم چی است فرصت خوبی پیش اومده که ما اصلا این نوار رو یک دور شو بگیم اولش کیه آخرش کیه وسطش کیه که بعد ما دونه دونه سراغ این نقاط میریم برای شنوانده ها روشن بشه من ما امروز پیش ازی که من وارد این نوار بشم ما درباره تاریخ بحث می‌کنیم یعنی موضوع اقتصادی اینجا به تو بحث ما موجود نیست بر بحث های سیاسی نیست اما تاریخ هست ما امروز مثلا درباره مشروطه کتاب ها نوشته میشه بحث میشه درباره 28 مرداد 32 بحث میشه درباره انقلاب 5 کتاب ها بحث ها جللسات پنجشا بنابراین وقتی که یک رخدادی رخ میده یک مدت زمانی که ازش میگذره اون رخداد میشه تاریخ رخداد های امروز کشور ما هم 50 سال دیگه میشه تاریخ داروش میشینم بس میکنن کتاب می نویسن بنابراین چون بحث ما مربوط به تاریخ میشه من این نکته رو در حد خیلی کوتاه دو دقیقه فقط عرض میکنم که چون مهمه در میانه های نیمه نخست جنگ جهانی دوم که همون جنگی بود که اروپاها بین هم راه انداختن و بقیه جهانم با آتش کشیدن فرانسه ناچار شکست خود از ارتش نازی و یک تسلیم نامه امضا کردن پاریس رو تحویل هیتلر دادن تسلیم نامه ها مثل فت نامه ها تو تاریخ ثبت میشن. منتهی بعد دیگه از شب همون روز دقیقاً تاریخ ثبت کرده که ها نیروهای مقاومت مردمی تشکیل دادن تا زمانی که تونستن اون تسلیم نامه رو باطل کنن. آخر پس, پس تو تاریخ ثبت نشده که شبش فرانسوی ها که اون روز با در کاری پتن و اینا تسلیم نامه رو امضا کردن، تسلیم نامه ثبت شده تا 100 سال، 200 سال دیگه 1000 سال دیگه هم فرانسویا نمیتونن میگن ما تسلیم نامه امضا نکردیم. کردن. میگن کردیم. اما شبش کسی ثبت نکرد که فرانسوی ها مثلا رقصیده باشن یا شیرنی پخش کرده باشن. در پایان همون جنگ جاپونی ها ناشار تسلیم آمریکا شدن. روی اون ناف اون تسلیم نامه رو امضا کردن. و شبش یک میدان معروفی از جاپونی ها رفتن اونجا و خودکشی کردن. تعداد زیادی تا روزها و هفته و سالها میرفتن و از این داغ خودکشی میکردن. آمریکا اون بومبا رو که انداخت میگن که جنگ جنگو تمام کنه، دروغه. آمریکا میخواست آزمایش انسانی کنه بمباشو. بمبو ساخته بود میخواست ببینه چه تاثیر انسانی داره. مثل این ابولایی که درست که چند ماه پیش انداخت تو آفریقا که بعد ببینه تو بمبای میکروبیش چه تأثیری داره وقتی بمبو بندازه به همین سادگی. آمریکا در این حد کثافته. ژاپونیو رو اون ناو اون تسلیم نامه رو امضا کردن، اما شبش تاریخ ثبت کرد تسلیم نامه رو امضا کردن، اما خودکشی کردن. تسلیم نامه ها با توافق نامه ها تفاوت دارن توافق نامه دو تا کشور توافق نامه مثلا تعرفه گمرکی امضا میکنن توافق نامه برای استرداد مجرمین امضا میکنه این میگن توافق نامه اما زمانی که یک کشور یک معاهده بینرمالی رو امضا میکنه و صاحب حقی میشه بعد به هر دلیلی قدرت های جانی او حق رو از او سلب میکنن و بعد ازش امضا میگیرن که تو حالا باید محدودیتو رو بپذیری غیر از کشورهای دیگه که دیگه اون حق خودتو از خودت سلب کنی به این میگن تسلیم نامه حالا شما میخوان اسمشو بذارن نمیدونم ترجیح نامه ترجیح بر نامه نمیدونم غیرتی نامه فرقی نمیکنه اون تسلیم نام است این تسلیم نامه ها مثل فدنامه ها صب میشن چیزی نیست همه کشورام بعضیا دارن این تسلیم نامه ها رو اما بستگی داره که اون کشورات شبش مثلا خودکشی کنن یا نیرو مقاومت تشکیل بدن یا بزنن برقصن چون اون زدن رقصیدن بعد تصمیم نامه اون دیگه ننگیه که تا ابد از پیشونی و مملکت پاک نمیشه امیر کبیر رو که تبید کردن پیش از کشتنش امیر کبیر گفت بود من اولا فکر میکردم که یک کشور وزیر فهمیده نیاز داره اما بعد ها متوجه شدم که شاید یک کشور برای پیشرفت یک شاه فهمیده نیاز داره اما الان متوجه شدم که کشور بر این کار فقط به فقط به یک ملت فهمیده نیاز دارد اینها برای سب در تاریخ تاریخافته میشه که بعدها این ننگ حاله مدار شاد پاک بشست میشیم خدمتون بگم که درباره نوار تاریخی دوستانی که در جریانن بنده رو ببخشن اما دوستانی که نمیدونن خب این موقعیت خوبیه که این تاریخ استوری ما رو بدونن از کجا آغاز میشه و به کجا خط میشه که بعد ما اینو مبنا قرار میدیم تاریخ رو در اطراف این ترسیم میکنیم جاهایی که نیاز باشه این اسطوره از قلم افتاده باشن ما با استناد به اسناد اضافه میکنیم بهش خب پیرایشش میکنیم پالایشش میکنیم اون تلاش میکنیم به چیز درستی با استفاده از دانشای دیگه به دست بیر. تاریخ استور ایران با کیومرس آغاز میشه حالا خانم دکتر یه مقدار وقتی در جلساتی که بودن نمونهاشو گفتن آقای کریمی گفتن بعد‌ها وارد میشیم میگیم که این کیومرس به های دیگه با واژه‌های بسیار نزدیک حتی از این سر قلم روی میانی تا اون سر قلم روی میانی تقریبا مشابه بعد ما الان نمیخوام وارد بشم کیومرس یعنی چیو اینا خب آی کریمی هستن خوام دکتر هستن خودمونم وارد بحث میشیم نمونهاشو میگیم میفهمد. فقط میخوایم میگیم کلیات این چیه بعد کیومرس سیامکه بله بعد از سیامک در مثلا شاهنامه هوشنگه اما در اسناد ما میان سیامک و هوشنگ فرواک هست بله فرواک از روی واژهش بعدا ما میتونیم متوجه بشیم که چه دوره‌ایه بعد از هوشنگه. هوشنگ هوشنگه همینطور واجهش معنای خاصی داره پاوشنگ بعد هوشنگ به تهمورس میرسیم اینا رو ما به طور قرار دادیم میگیم مثلا تهمورس پسر هوشنگه اینطوری نیست اینا حالا بعد دورای پشت سر احمد بعد تحمورست جمشیده مانه. بعد از جمشید ما وارد دوره زحاک میشیم بعد دوره زها به حساب همون مست... به طور مستلح برادرزاده فریدون که پسر آتبین یا آپتین باشه فریدونه که میاد بعد فریدون سه تا پسر داره سلم و تور و, و ایرج ایران رو به پسر کوچیکش ایرج میسپره تور و سرزمین دیگه را به سرزمین‌های دیگه خوندراسر هم به تور و سلم و تور میده بعد ایرج خدمتتون بگم یکی از نواده های دختری فریدون زیاد کشته میشه به دست برادراش یکی از نواده‌های های دختری فریدون به نام منوچهر که آرش کمانگیر در این دوره است بله من. بعد منوچهر دوره نوزره یک دوره تقریبا پراشوبیه تو ایران پس از اون زو پسر تحماس به شاهی میرسه به اصطلاح این هنوز تو دوره پیش دادیم از کیومرز که آغاز کردیم هنوز تو دوره پیش دادیم پس از زو پسر تحماس و هم این با گرشاس به نیای سام و زالو اینا فرق, فرق بارند این آخرین های دادی پس از اون که دوری کیانی میخواد آغاز بشه دوری کیانیه داریم وارد دوری ملموس تر میشیم دیگه اینا کم کم میرسن به جایی که اصطورهی به حالت تاریخی تر میشن اینی که ما یک نشست گفتیم که همه چی رو به آسیه میان رپ میدن جالبی که رستم کیقوباد سرسلسلی کیانیان رو میره از کجا میارش؟ ا هیچ کس ننوشته میره از آسیه میانه میارش از تاجیکستان میارش از البرز میارش فریدون هم تو البرز بوده اصلا همه چی تو البرز میگذره در استورای ایرانی بعد کیقوباد کیقابوس معروفه کیقابوس پسر معروفش سیاوشه سیاوش به خاطر پایبندیش به اون عهد و پیمان با سابتورانیان نوادگان تور پشنگ و افراسی ها اینا سرش بریده میشه جالبه میگن سیاوش تو استورای ما هست که در بیابانی سر سیاوش بریده شد که به اندازه اون بیابان خوش بود که گیاه هم حتی دران نمیروید بله. و بعد سرش به دست گروه زره بریده میشه و از خونش لال سیاوشان میروید بعد بعد سیاوش پسرش کیخسروه که خسروی بسابدی خیلی معروف که خسروی که از شهایت که خسروی مبارک به قول سهروردی که خسروی واقعا تو تاریخ ما مبارکه بعد که خسرو لحراس به بعد به دوره گشتاس وارد بشیم که هم دوره با زرتشته زرتشت معروف و این نشانه خاصشه گشتاس پسری داشته به نام اسفندیار دو بحل. تا پسر پشوتن و اسفندیار روی این تن معروفه اسفندیار کشته میشه و بعد پسرش بهمن رو که رستم بزرگ کرده بوده بهمن به شاهی میرسه بعد بهمن همای به حساب شاهبانو شاهبانو کیانی همای چهرازاد بله. بعد همای پسرش دارابه و بعد داراب داراست حالا اینو کیان ما میرسیم بهشون دیگه بعد دارا هم تو سلسله کیانیان با اسکندر به پایان میرسه یعنی اسکندر در تاریخ اسطوره ما پسر فیلغوس این جزء کیانیان محسوب میشه. دکتر جان شادرشفن اینو تقریبا اثبات کرده که اسکندر به چه دلیل در اسطوره ما هم تباره با کیانیان محسوب میشه و ما بعد بهش میرسیم و توضیح میدیم. حالا من ترجیح میدم اول کریمی رو بفرمایید. من باز دوباره درباره این برده. نوار باز نه، توضیح اسامی و همین دورهایی که فرمودید خیلی هم لازم بود و اه یک اه تقریبا ایاری اومد دسته شنونده که با. مثلا ما میخواییم صحبت بکنیم کیومرس حالا درسته به عنوان یک اسم هسته، مطرح هسته حالا امده نظر استور شناسان ما اینه که کیومرس یه دوره است یه دوره, یه دوره حتی یکی دو هزار ساله هم هست حتی در تاریخ و حالا نماد یک دوره از انسان شناسی هست حالا ما بحثش رو ادامه خواهیم داد و دنبال اون خواهیم رفت که ما در دوره پیشدادیان دادگان ام مباحث خصوصا اون 6 7 اسم اولی مباحثش انسان شناسی است تا اینکه مثلا ایران شناسی و بعد وارد مباحث ایران شناسی تر میشیم بعد مباحث تا حدودی تاریخی تر میشه ملموس تر میشه و قابل فهم تر میشه و برای کسی که تاریخ میخونه قابل پذیرش تر میشه تا اینکه مثلا بخواد اینها رو به عنوان یک اسطوره یا افسانه تلقی بکنه چلو آقای کریمی به عنوان کارشناس زبان شناسی این برنامه مباحث شما با یکی از کارشناسان دیگر برنامه خب گرامی ادامه میدادن و اون رو پیگیری میکردن تا حدود به یه جایی رسید فعلا در این قسمت از برنامه شما مباحث خودتون ادامه بدید و ما برسیم به بحث نوار تاریخی با درود فروان خدمت اعیان گرامی در سرسرا سر جهان راستش شهر دفعه اسم جمشید میاد مثلا جوری میشم حس خیلی قوی بهم دست میده فقط سپاسگزاری می کنم روان اون کسانی که این همچین گنجینه برای ما یادگار گذاشتن حفظ کردن دوره جمشید از این لحاظ برای ما خیلی های زهمیته که ما می‌خوام یه ادعای بزرگ رو این دوره بکنیم ادعای ما چیه ادعای ما اینه که آقایون اروپایی که اومدن این داستان‌ها رو برای ما نوشتند ما یه مثالی میزنم یه می خود طنز بشه قضیه یه کارتونی هست ما نگاه میکنیم بنابرای باب سفنجی. بله اینا زیر آب آتیش روشن میکنند غذا درست میکنند زیر آب زیر آب قایقرانی میکنند اینکه ما بگیم جمشید در اون سالی که اینا میگن هزار دوم پیش از میلاد اون چمنزارهای های دشت های رها کرده اومده وارد کبیر ایران نصفت موجود کبیر بوده دیگه اصلا توی از فلات تو این زمان وارد فلات ایران شده به درد همون کارتون با وسفنجی میخوره. خورن دقیقاً واقعا مثلا نمیشه فع زیرا... نمیشه قبول کرد بله زیر او آتش میکنه بله قدیم ما شوخی میکردیم میگفتیم رشته درست کردن رشته به من آبیاری گیهان دریایی حالا ببینید واقعا هم ست ساعت دارن چیزی که عرفا داشتن فاشی گفتن اصلا مبهوت میمونم اینا چجوری هم چیزی چیزا پذیرفتند اونم بعدن گفتن جمشید یه دوره‌ای بوده برای هند ایرانی نه خیر هم چیزی نیستش این دوره بوده برای همه ای آریایی ها پله. زمان جمشید دوره یه که همه ی آریاییان، ها... آره این هندو همه ی که اروپایی بشم میگن هندو اروپایی دارن با هم زندگی میکنن. هنوز از هم جدا نشدن. و این سند موسسه کامل ترینش دست ایرانی است. نه حتی مرد هندی چه به این قشنگی و این کاملی نیست دست اروپایی بهش هم به این کامب نیست کامل سندی که از جامعه دستش دست ماه. خب ما همواره اعتقاد داشتیم که من خودم اعتقاد داشتم که این پیشتاد یا من بگم پیشتاد چی ببینید واژه دا در عوضه ای تا معنی داره بله؟ یکی به معنای آفریدن یکی به معنای قرار دادن وقتی پسمند تب به یک فعل متعدی پیوست میخوره میاد از این صفت مفعولی گذشته میسازه چون فعل متعدیه قرار دادن چه چیزی را قرار دادن میشه داتا داتا یعنی قانون یعنی چیزی که نهادینه شده همین الانم هم ما میگیم قانون نهاده شد نهادی شد مثلا درود بر شما نهادینه شد این هنوز تو همه دادگستری و دادستان و اینا مونده پیش دادیان یعنی نخستین قانون گذاران چرا این موقعی نبود که مثلا قانون در چرا قرمز و نمیدونم چیزا باشه ما از یک کتاب به نام مبانی انسان شناسی های دکتر محمد صادق فرود که مطلبی آوردم یشون البته بگم زندگی چادر نشینی که ما داریم میگیم این مال ده ها هزار ساله پیشه اتفاقا بشر اول از قاره همه مود بشر هیچ فرقی نمیکنه ایرانی، سومری، نمیدونم بابلی، آکر هر چی میخوان بگم هیچ قومی نبوده که دوره قارنشینی و دوره چادر نشینی رو نگذرونده باشه و تمدن رسیده باشه اگر میان میگن یه ها سومرون اگر دروغ محضه سومری ها هم نیاکانشون چادر نشین بودن و پیشتر از اون قارنشین بودن و امکان نداره غیر از این بوده باشه هیچ تمدن یه به وجود نیامده. ایشون دو کتابشون صفحه روی دیوز پنج و میگن زندگی چادر نشینی و دامپروری سبب پیدایش قوانین، عرف، سنت ها، رسوم، معتقدات، نهادهای اجتماعی که بیشتر قبیله خاص بود به وجود اومد یعنی این داری ما در کی صحبت میکنیم ببینید من الان زمانی که برای جمشید قائلیم اگر شما در وندیداد نگاه کرده باشید پیش از اسریخ بندان از جمشید نام برده میشه که سه تا زمان 300 ساله اون زمین پر میشه و دیگه جا برای زندگی نیست الان ما اینجا هم میاریم اصلا یک معجزه است همچنین نوشته ای سه بار زمین پر میشه دیگه جایی برای زندگی نیست اینا ه سه بار زمین گسترش میدن حالا میگیم فرق کوچ با گسترش چیه؟ یعنی اونجا هنوز جمشید هست. بعد میرسه به عطر یخوندان. ما میدونیم عصر چهار هزار سال طول کشیده یعنی بین این هزار سال تا ده هزار سال آخرین پششگی هستش این زمان صر یخمندان ورم چه هستش. یعنی 3 تا سال پیش از اون. خودش هم هزار سال باز هنوز جمشید هست. تا میرسه در زمان زهاک پس ما برای همین میگیم نمیتونیم بگیم تو جمشید یک نفر بوده یه دوره است یه دوره است بعد اگر به میگیم آقا یک فرد بوده علنا چندین هزار سال تاریخ خودونو فلج میکنیم یه فرد حداکثر میتونه 72 سال مثلا اون چیزی که میگن پادشاهی قرار بدیم یعنی ما میبینیم با این کار چندین هزار سال تاریخ خودمونو فلج میکنیم ما با جمشید میخوایم ثابت کنیم که این کوچی که میگه ما نه تنها نمیگیم که ایرانی ها از اروپایی یا از جای دیگه وارد ایران شدن بلکه میگیم اروپایی ها بودند که از این فرات به سمت اروپا رفتن و این جمشید نیای همه ی آریایی هاست و همونطور که خدمتون رس گردم بیشترین سنده ما در مورد جمشید داریم از بند هشت اگر اشتماع نکره شدن تو وندیداد میاد توضیح میده که چطور زمین پر میشه از گاوها، سگها، بعد اواب به حیوانات از این مجاهتر می گفتفتن سطور مثلا گاو شتر این رو بشون سور پس پسو یا پس ونی اوفند و حیوانات کوچیک رو می گفتن. جالب اینجاست میاد توی این می سه بار میگه زمین ای... یم زیوار روی ویونگ هان زمین پر شده از مثلا مردمان آتش های و همین گوسفندها ها و ستوران ها و الخر خیلی جالبه ما از یه نکته ای برداشت میکنیم ما میدونیم بشر. حیواناتو رام کرده طی هزاران سال میدونیم که سگ رام شده گرگه میدونیم که گاو اول رام نبوده همه اینه ثابت شده است بس وقتی میاد زمان جمشید میگه زمین پر شده از این حیوانات پس نشون میده که این حیوانات از پیش از دوران جمشید رام شده باشن بله برای همین ما میگیم زمان تهمورس که پیش از جمشیده پس بعد جانوران رام شده باشن که در وندیداد میاره هیچ ای به رام شدن اینا نمیاره پس این حیوانات موقع رام بودن اهلی بودن که در مینوی خیرده بهشون اشاره میشه بعد خدمتشون ارساد که دوباره شما نیا کنید همین کتاب روی 256 در مورد زمان جمشید پیش از اصری اخبندان که گفتیم زمین پر میشه از جانوران، پرندگان، مردمان و الاخر این کتاب صفحه 256 می‌نویسد پیدایش کشاورزی به دلیل طول فصول کشت و برداشت سبب توقف بیشتر انسان‌ها در مناطق حاصلخیز شد که حاصل آن شروع سازی با استفاده از مصالح طبیعی مصالح طبیعی شما برید ببینید دقیقا در شاهنامه نام که ساخت خشت و دیوار زمان جمشیده اصلا واو به واو همخانی داره با استفاده از مساله طبیعی پیرامون آنها بوده است هر خانه از چند قسمت تشکیل شده قسمتی برای نگهداری دام ها و قسمتی برای سکونت افراد حالا من همه اینا رو مثالش دووندیدات میزنم همه مناطق برای ایجاد مسکن و شروع زندگی از استعدادای یکسان برخوردان نبودند از این رو مناطق مشخصی مورد استفاده انسان ها قرار گرفته و برای خانه سازی انتخاب می شدند این خانه ها در مجاورت یکدیگر و با فاصله کم ساخته می شدند هم در کردستان بلد می بینید خونه ساختنها را قشنه حتی عروس اقفا به راه دارند که منشه پیدایش نخصی رسته ها شدند این روستا در نتیجه افزایش تراکم جمعیت به تجریج بر یکدیگر نزدیک شده و نطفه اولین شهرهای کوچک را ساختند تراکم جمعیت و پیوستگی خانهها همراه با تنوع نیازمندیها و پیدایش حروف گوناگون و بازرگانی علیآخر ببینید دقیقاً داره همون میاد چیکار کنه درونه کشاورزی در جمشید ما داریم که در اوج خودش میرسه درونه کشاورزی در اسطورهامون داریم که در زمان تحمورس آغاز میشه مذهب هوشنگ آغاز میشه به صورت بسیار ابتدایی در زمان تحمورس ادامه داره در زمان جمشید به اوج خودش میرسه که حتی در وندیداد زمین زمینون به خیش زرین توصیف میکنه یعنی اینکه میگه اینقدر کشاورزی اهمیت داره که میاد خیش که وصیای شوخ رو به طلا تشبیه می‌کنه یه خیش زرین ما می‌بینیم کش کشاورزی خیش زرین درست نمی‌کنه تمثیل هستش دقیقا دقیقاً وا وا در زمان جمشید کشاورزی پیشرفت کرد ما می‌بینیم در علمی این کتاب نیومده از عمدی داد این علمی که در جهان سر بله. یعنی کشاورزی که در جمشید ما می‌دیدیم در اینجا هست استفاده از فوق العاده است اصلا شاهنامه آشکارا میگه, میگه ساختن گل و دیوار زمان جمشید بوده زمان سوفال زمان جمشید بوده یا مثلا خدمت شما عرض شایدم که پیدایش نخستین ها تراکم جمعیت یعنی دیگه واقعا زیباترین جمله است یعنی شما میبینید گفتن خدمتتون پیش از اصر یخبندان سه بار اینا گسترش پیدا می‌کنن بخاطر که جمعیتشون زیاد میشه یعنی گفته‌های وندیدا شاهنامه با علم امروز کاملا همخونی داره قوم خب وقتی ما اینو بتونیم مقاله کنیم تو جامعه جهانی اینو بیان کنیم کی میتونه جلو ما استقامت بکنه بعد من دوباره یاداوری میکنم کسایی که دوست دوباره بیشتر تحقیق کنن کتابی هست داستان ایران نویسندهش آرم دکتر جعیدی هستن میتونن خودشون تهیه کنن یا تو ها بخونن در مورد سرمایه‌وندیداد و برابری اون با آخری سر سر و آخرین عصر یخبندان صفحه 128 و 129 یا خودشون مستقیما کتاب داستان اصر یخبندان روز وایلر و جرالد ایمز ترجمه خانم حمید غروی روی 38 تا 40 نگاه کنند یا خودشون میتونن وندیداد روی نو بخونن یا مینوی خرد روی 58 نوشته شادروان دکتر احمد تفضلی انقدر این جمشید داستانش قانونمنده برای ما یعنی ما با همین جمشید تمام تاریخ ایران میتونیم زیرو رو بکنیم دست به هیچ چی نزنیم، هیچ چیزی نتونیم ثابت بکنیم، با همین جوشین هم از بین بردیم. هر چیزی حالا اروپا رشته کردن پابند می‌کونیم. به شرط اینکه بخوایم و اراده بکنیم و اینکه یک اراده قوی توی کشور و در میان پژوهشگران و دانشجویان و اساتید باشه که این دوره رو بتونه تبیین بکنه بر اساس داده‌های علمی، بر اساس علوم مختلف اینکه که تمام اسناد این دوره رو از فیلتر علوم مختلف رد بکنه و مستند و مستدل برای دانشگاه های ارائه بده و اونا دیگه حرفی برای گفتن و جواب برای رد کردن اون مسئله نداشته باشن چون یک متدولوژی علمی که خودشون بنا کردن شاید اینجا در واقع به زررشون تموم بشه و ما بتونیم جلوی اون بیستیم متشکرم از جناب آقای کریمی عزیز بابت توضیحاتشون چناباغا ایران مر شما قول دادین که فعلا وارد دوره جمشید نشیم ما میدونیم که در دوره جمشید شما حرفای زیادی برای گفتن دارید و حالا اگه خودتون مایل هستید باز هم این کلیات نوار تاریخ رو ادامه بدید و اگر خواستید یک کلیات از دوره جمشید هم وارد بشید حالا چی دردی هم نداره ولی خب ما مباحث دوره جمشید رو قطعا به همراه کاشناسان دیگه وارد مباحث جزئی اون خواهیم شد بله خواهش میکنم. من یک نکته رو هنوز زیادم نرفته بگم آی کرمی یک چیز خوبی گفتن درباره ها و اون مطلبی که از اون کتاب گفتن که تمدن‌ها همینجوری یکباره کی شکل نمی گیرن بله که ما درباره سومر می‌خونیم جالب ها میگن سومر یک دفعه شکل گرفت و ما هنوز نفهمیدیم یک دفعه چطوری الان شکل گرفت اصلا عجیبه ما جزیره است زبانش نم چیش یک هویی وجود اومده آخه درست میگنید مسئله انسانشناسیه مثلا انسان اصلا عقل میگه نمیشه چیزی از هیچی دفعه به وجود بیاد اسناد چون خودشون حرف میزنن کارو آسون میکنن من نمیگم اروپایی‌ها های اسناد رو ندیدن من میگم اینقدر نامردن که عنوانش نمیکنن بله ما نمیشه ندیدیم ما دیدیم دیگه اونا ندیدیم و اونها ای اسناد از زیر خاک درآوردن لودینگرا یک شاعر سومریه بله یک شعر بلندی داره به زبان سومری مالامو 6000 سال پیش یک بخش کوتاهش اینه میگه نیاکان من از سرزمینی به نام سرزمین مقدس به اینجا آمدن که آن سرزمین در شرق اینجا واقع است شما از یه خط چی مشخص مشخصه دیگه. دیگه شرق سومر کجا میشه دیگه آدم چی بگه دیگه یک دفگی آمدن ما نمیدونیم اینا از کجا آمدن چی شد ایوهای حالا چه جوری کشفش کنیم یعنی شما یه خط شیر رو نیدین قطعا دیدن از این واضحتر من نمیفهمم کتیبهش دیگه هست اصلا کتیبه با همو خط و تشکیلاتش هست ترجمه هم شده حالا اگه بهشون بگی یکم یک فشار بیاری میگه معلوم نیست شرق سومر شاید از ژاپن جای آمدن اینطوریان دیگه حالا به یا مصر آیه کلیمی درست میگن ما گفتیم یه دفعه‌ای مصر میگیم در 5000 سال پیش یهوی در اوج شکوه دوران مثل نو شکم میگیره با یک فناورایی پیشرفته خب من وقتی وارد دوره های هزارهای چارم و سه بشیم حتما توضیح میدیم وقتی دوره های پیش دودمانی رو ما توضیح بدیم بعد اونجا میفهمین که بله درسته اینا قبلا دوران بدویتشون رو در جای دیگه ای سپری کردن, سپری کردن. اصلا یاد دانش گرفتن. تک... هایی به دست آوردن بعد رفتن اونجا در اون دوره با اون سطح دانش یک دفعه ما یافته های باستنشانسی پیدا میکنم من اون نشستم پیشم گفتم گفتم ببینید ما دوازده هزاره داریم دیگه. هنی نمیشه کاریش کرد ما واقعا دوازده هزار داریم سومریا اگه حتی همین امروز هم بودن همین امروز هم اگر وجود داشتن کشوری به نام سومر رو کره زمین وجود داشت همین امروز هم نمیتونستند دوازده هزارو برای خودشون میگن چون تاریخشون تازه امروز میشود چیزی دارند مردمی میتونن دوازده هزارو بینیند که سه چهار هزار سال پیش پشت سرشون دوازده هزار سال تاریخ میداشتن دیگه از خوچونکی در نی بودند که اروپا یا وقتی با هند و ایران برخورد کردن و اون کتاب مقدس بایبلی که بغلشون بود دیدن واقعا آبروریزی جلو وداها و عوستا اینا ناچار شدن اومدن یک ای به نام استورهی موجزه یونانی درست کردن گفتن که خب همیشی از یونان آغاز شده حالا کتاب مقدس رو ولش کنین ما بازم از شما قدیمی تریم اما هرچی زور زدن باز از اولین المپیک دیدن به 3000 سالم نمیرسن, نمیرسن. بعد اومدن خودشون رو وست کردن وقتی میان رودان و مصر و اینا کم کم از زیر خاک در اومدن آمدن خودشون رو وست کردن به اینا گفتم فینیقی ها از اینان ما هم که از فینیقی هاییم درست شد دیگه کوهند ترین تاریخ ها مال سومر و مصر ما هم که از ایناییم شما به ناماشون هم نگاه کنین بندهای خدا نامی که از خودشون ندارن که یا یوزف و یاکوب و نمیدونم تریتی و اینای از انجیل از عهد جدید و عهد عتیق از بایبل کتاب مقدس یا نام های هیتیایی دارن پنلوپه، تراویس، هکتور یا نام های خدمتون بگم باز از همین مناطق بیا مصری دارن همه چیشون حتی نام های مربوط به همین اوضاع این طرفه خودشون از خودشون نام خاصی ندارن بنابراین شروع کردم به بزرگنمایی نمایی میانرودان مصر. مهن جد دارو هم که اون طرف پیدا شد کنار سند، اونم 500 سال، گفتن آقا، یک تمدن اون ورشک گرفته. یک تمدنم هم توی میانرودان و مصر شک گرفته. حالا هندی که مال هندند، خیلی با هند مشکلی ندارن چون مستمری خودشون بوده. این طرف هم که ما هم از ایناییم خیلی جالبه. احتمالا بین سند تا فرات یا دجله توی این سرزمین بین اینا. و با این یک همشری یک چیزی کشیده بود بعدی که اون نام اخاملش رو اینا رو برداشتن تاریخ یک تصویر کشیده بود تصویر تنز معلمه داشت به داشت سرش میخارون میگو والا اینجوری که تو کتاب شما نوشته دیگه قبل ما مثل که سورا اینجا بودن بله هیچکی نبوده هیچکی نبوده دا. حالا اینا هم اینطوری که چیز کردن احتمالاً بین سند مثلا تا احتمالاً بوزی بابایی اینا, اینا بوده دیگه اصلا خیلی عجیبه واقعا یعنی میدونین یک رگ شرفم تو تنها آدم باشه گاهی بد نیست آخه بی نمیشه که این همه شهر دیلمون، عرطه، سیالک، کیمش شهر سوخته هست، تپه حصار هست تپه موردیک هست. هست اینه آخه شما همش هم تاریخاش هفتش بالای هفتش هزار ساله چطور آخه گزارش های سومری هست این مرکار میگه من آمدم رفتم عرطه آمدم لوگلبنده رو فرستادم اینجوری که خودشون دارن میگن که میان هم بابا رو سرشون میبرن برمیگردن خب اینا بالاخره بوده دیگه چطوری منکر میشین اینا همه رو اینا به از این کارا میکنن دیگه توی این رما تاریخی من عرض کردم که یخ ها خیلی مهم و دوسافی کمک میکنن یعنی در شناخت اینها ما نمیتونیم از کنار اینا بگذریم چیزی که آی کریمی گفتن من مدار شک دارم اون چیزی که توی اسطوره محمد جمشید هزار سال این جمش 4000 سال نیست چون یخبندان مارس کردم حالا اون نموداری که در قسمت 15 شنوندا میتونن برم ببینن که بارگذاری میشه ببینید اون یخبندان متأخر زمین 17000 سال پیش بوده که خلیج فارس کامل خوش میشه کامل خشک می بعد شروع میکنه به پر شدن بعد ما یک دوره یخبندان کوچک داریم که اون یخبندانای طبیعی نیستن هولوش 12000 سال پیش اون بر اثر سقوط اون حساب شاپ اون ستاره دوباره در آمریکای شمالیه که نیم کوره شمالی رو دوباره دو درجه دماش رو میانگینش رو میاره پایین کره زمین رو و یه یخ کوچک رخ میده. برای اینه که احساس میشه یخ از حدود هزار سال تا 12 یا هزار سال پیش طول کشیده. طول نکشیده. یخ بندان تموم شده. خلیج فارس در حال پرشدن بوده. در حدود 12 تا هزار سال پیش یک سرمای نسبی, نسبی دو درجه افت دوباره. و اما بعدش باز دوباره نمودار بالا میره بنا ببین جمشید رو حالا بعد بال میشه من نمیخوام الان چیز کنم نمیتونیم 4000 سال کشش بدیم در این حال در اسطوره های قلمروی میانی به جز فلات مردم فلات ما خبر و گزارشی هیچ گزارشی از چین هند مصر میان رودان اروپا که اصلا اصولا نمیتونن اسطوره بیرون از اسطوره های ما داشته باشن هیچ کدوم مثلا حمود اجه هیچ گزارشی از سرما نداریم دقیقه. شما برین تو تمام استورایی چی نگاه کنین که سرما آمد خدای فلان اینجوری کرد اونجوری کرد نداریم مصری ها هیچ گزارشی از سرما ندارن شما در استورای میان رودان و هند هیچ گزارشی که سرما آمد ما مقابله کردیم نمیرم خدای فلان کمک کرد از اینا ابدا اما جالبه در همه اینا به علاوه به گزارش درون فلات گزارش سیل داریم همه شون دارن همه شون هم در یک تاریخ مشخص همه شون سی... سیل بزرگ سیل بزرگ, بزرگ رو هم سیلی که امروز شروع شد بعد از اون همه هم جا رو برد نیست سیل یه دوره عزیل. سیلابی زیاد خیلی زیاد یه دوره پرسیلابی که واقعا به امان آورده بوده مردم رو که اینو تو هاشون کردن در چین داریم در هند داریم در میان رودان داریم البته در مصر بیشتر همون چیزا رو داریم چون مصر بعد از اون طوفان بزرگ شکل گرفت تمدنش یعنی طوفان بزرگ رو تجربه نکردن تو مصر همون حساب های نیل رو اونا ثبت کردن بنابراین این یک چیز که به ما نشون میده این تمدنها, تمدن ها تمدنی که از یخ داره گزارش میده یعنی که من یخ رو دیدم بعد بله. ما این مردمان دیدن, دیدن یخ و ازش فرار کردن مردمان که از یخ بندان نمیدن یعنی تمدناشون بعد از یخ شکس گرفته دیگه خیلی بخوایم کشش بدیم تا زمانی که اولین آخرین یخبنداز زمین تمام شده اینا شکس گرفتن بعد ما ماجرا تا که توضیح بدیم ببینیم که کاملا هم جور در میاد اما اینا اون سیل رو دیدن ببینیم بعد یخبندان که یخو پس میشینن اون همه یخ که آب میشه چی میشه بله یک دوره پرآبی به وجود میاد دیگه همه تو گزارشا خودمون توی یشتام داریم دوره تیریش دوره پرآبی دیگه دوری اپوش کمابیه تیریش دوری پرابیه پری های به امون پریان ها اونا به یاران تیریش بوده، تیشتر بودن و آب فراوان می آوردن بنابراین ما خیلی یکی تاریخ هایی که به منشون میده که خونی رس کهانتره و بعد شش کشور اطرافش تشکیل میشن ببینید ما از روی هوایشناسی هم کاملا از روی گزارش استوری هم کاملا میتونیم اینو درک کنیم این گزارش های مکرره از سیل حالا من یک دونهشو میخونم در افسانه های یک چیز دیگه هم داریم حالا بعد اونچه مربوط به خلیج فارس من بعدا مطرحش میکنم من فقط یک دونه از این گزارش های سیل رو براتون بخونم سرگذشت طوفان بزرگ و سیلاب ها همچنین در تاریخ های سنتی چینیان نیز آمده است به موجب کتاب های خیزران در زمان یو مؤسس دودمان شیا یا یعنی نخواستین سلسله که البته اون سلسله ثبت شده است سیلاب‌های عظیمی سراسر امپراتوری را تا بلندترین تپه‌ها در گرفت یو با کمال شایستگی موفق به فرونشاندن سیلاب‌ها در مدت 13 سال می‌شود یعنی ببینید اونا هم تو هاشون یک کسی رو دارن که در سیلاب بهشون کمک می‌کنه ما هیچ نشانه ای از توی تو یخ بندان مثلا اینا یک کاری کردن یا کن نداری نداریم ندارم ندارم. ما با تطبیق این شواهد می‌تونیم این حساب این مسائل رو روشن کنیم من دیگه زمان کلنم حالا برای جناب آقای کریمی عزیز کلا پنج یا چهار دقیقه شاید فرصت نیستش اگه جنمندی از صحبتهای خودشون یا اینکه نکات تکمیلی برای مباحث این قسمت دارن بفرمند تا اینکه ما برای قسمت بیستم یه قولی به شنمندگان عزیز بدیم و امیدواریم که کارشناسان دیگه هم در قسمت 20 بیانون، یواش‌هاش وارد دوره تاریخی و دوره شیرین و طلایی جمشید بشه. من بعد خدمتتون عرض کنم که دوره 1000 سال جمشید که میگیم اون پیش از اسوعخمندانه که چون 3 تا 900 سال اصلا خودش اونجا خود وندیداد از بنده ایشان یا هش شروع میشه. یعنی 3 تا 900 سال تازه پیش از اسوعخمندانه. یعنی اون 1000 که میگیم تازه اینا همه پیش از اسوعخمندانه. بعدا اصلی که ما میگیم این سال طول کشیده من که معرفی کردم دقیقا که میاد میگه دو فصل بیشتر نداره که ده, ده مای زمستون دو مایشتابستون تو این دو ماه آب سرد گیاه سرد دقیقا گفتهای وندیلال خرده کاملا منطبق تو این کتاب اومده یعنی دقیقا خود سرمایه اصلی بوده ما مثلا از ورم دو داریم ما از چند تا کتاب من استفاده کردم مثلا به وررم دو ما از ۸ ه سال تا 16۵ سال 15 زار سال طول کشیده یعنی اینکه مابی 400 سال تازه کم بوده در دورهای زمین شناسی این اعداد اعداد بسیار کوچیکیه وقتی ما در مورد چند میلیون اینه صبت میکنیم کنیمیم هزار سال اصلا به چش نمیاد یکی یعنی برای این و خب دوست نقط قشن گفتن که اون کسایی که از سیل صحبت کردن از اصلی اخوندان صحبت نکردن یکی یعنی اون موقع نبودن. یعنی ما... تازه ما از جمشیدی که داریم میگیم دیم از ورم چهار حرف میزنیم ما سه تا ورم دیگه هم داریم پیش از اون که به اونها میبرازیم این حد اعلی توان ماست که ما هم... مثل همین میگم ما با همین جمشیدمون تمام هر چی نالشته کردم بنده میکنیم. در مورد سیل بعد میگم تو همون وندیداد بندی 24 اومده که میگه بعد از اینکه برف ها آب بشه چه سیلی خواهد آمد بله یعنی وندیدار زیباترین قسمت تاریخیه که من, میگم من جرعت میگم جهان یعنی نه سومری نه اکدی نه آشوری هیچ کدوم نه مثری به گرد پاشم نمیرسند از یه دوره اصلا زیبای پیش از چجوری بشر جمعیتش روش پیدا کرده چجوری گسترش پیدا کرده چجوری بس یخمندان رسیده بهش به سیل میرسه چجوری کشاورزی استفاده از مسئله اصلا آنم میگه معجزه است معجزز است چجوری به همه یه تک تک اینا اشاره شده همش هم همخونی داره با تاریخ با زمین با شناسی با, با اینسان شناسی پافشاری میکن که میگ پنج شما باید همش داره چارچوب باشه به خاطر که اروپایی ها حتی دروغ هم میگن و دروغ هاشون چارچوب دارن مین یه چارچوبی درست میکنم به نام معاجرت آریایی به دروغ بعد میان تو این چارچوبشون است شناسیشون فرهنگ شناسیشون و زبان شناسیشون و شناسیشونو. هرچی هست تو این قرار میدن یعنی حتی برای دروغاشون هم چارچوب دارن شاد جامو جامو شترخونی تونست با زبان شناسی چون زبان شناسی خدمتون عرض کنم میگم رو اخلاق مدارتر هم نسبت به بقیه یعنی واقعا اینطور نیست ای مثلا دلیل موثقی براشون بیارید میپذیرن مثلا این شاد جامو جامو شترخونی تبدیل همخوان و و به رو تونست بهشون ثابت بکنه که آقا این که شما میگید برای هزار سوم پیش از میلاد هم اتفاق افتاده. پس شما میگید هزار دوم پیش از میلاد این های ایرانیه پس چطور هزار سوم پیش از میلاد ما میتونیم همچین تبدیلی رو ببینیم. با یک چیز ساده تونست زبانشناسی از چنگ اونا در بیاره. که ما حالا ده ها چیز بهش اضافه خواهیم کرد. ولی آمد. با یه چیز این چارچوب اونا رو شکنده. که من میگم همیشه تو آخر اگر خدا همراه بودیم با هم تا آخر باید این چاشو به نظر من البته جساد نباشی باید رایت بشه اگر نه به مشکل برمی خواهیم. چون میگم هدف بعدی نیست که برنامه صحبت بکنیم باید این آخرست جنبندی بشه بله متشکرم جناب آقای کریمی وقت برنامه هم رو به پایان هستش امیدواریم که در قسمت آینده با حد اکثر حضور کارشناسان برنامه در خدمت شنوندگان گرامی باشیم و وارد دوره جمشید بشیم و تقریبا یک جمع از این دوره داشته باشیم و روی این قسمت از نوار تاریخی به توافق نسبی برسیم توافق کامل که امکان نداره ولی یه توافق نسبی برسیم و بعد دوره‌های قبل از جمشید و دوره‌های بعد از جمشید بر اساس این اسناد تنظیم بکنیم و بازخوانی بکنیم شنوندگان گرامی خیلی متشکرم از حضورتون و همراهیتون با این برنامه قسمت 19 برنامه ایران و جروب پایان هست. شما رو تا آغاز قسمت 20 به خداونده متعال سپاریم. خداییار رو نگهت دارد.